بسم الله الرحمن الرحیم در درس قبلی خواندیم که کلمات مجرور می شوند یا با حرف جر او به اضافتی اسم یا به اضافه کردن اسم مضاف کردن اسم علا معنی لام حالا یا به معنی لام هست که غلامی زیده مانند غلام زیده اینجا مضاف غلام هست زید مضاف اله ولی به معنی لام هست یعنی ل لزید غلام زید غلام زید, غلام زید معنیش چی هست؟ غلام لزید یا به معنی من خاتم, خاتم حدیدن چون ایک کاف روش اومده خاتم مجرور شده مضاف خاتم مضاف هست حدیدن مضاف نه ولی به معنی چه هست؟ خاتم حدیدن انگشتر آهنی. دیگه معنیش ده میشه خاتم لحدید بلکه خاتم من حدید پس مضاف یا با مضاف شدن اس به معنی لان مانند غلام زید به معنی من مانند خاتم حدید او فی یا فی زمانی که مضاف ریلیی ظرف باشد مکر لیلی الليل است و تصم ما معنوی این ان مضاف رو اضافه معنوی میگویند چرا چون لعلنه حال یا برای معرفه کردن است زمانی که مضاف به کلمه معرفهی شود اینجا برای معرفه کردن است مثلا در این سه مثال غلامی زید غلام مضاف به معرفه است یا نکره ببینیم که به معرفه است پس اینجا مضاف شده به یک منظوری معنوی برای معرفه کردن اول تخصیص یا برای تخصیص و این زمانی است که معرفه به نکره شود مانند خاتم و حدیدن که حدید نکره هست اینجا چرا مضاف شده است برای تخصیص خاص کردن پس دونه مضاف داریم مضاف معنوی او به اضافه الوصفی الی معمولی یا به اضافه کردن وصف مضاف وصف باشه مثل غلام جامد نباشه وصف باشه کا بالغ الكعبه این بالغ اسم فائل وصفه، اسم فاعل، اسم مفعول، صفات مشبهه، اینها همشون واسطند. بالغ الكعبتی، بالغ که اسم فائل هست، وصف هست، مضاف هست به کعبه که معمول هست ما بیتونیم بگیم بالغون الكعبته ولی اومدیم مضافش کردیم ولی به خاطر نیتی معنایی مضافش نکردیم بلکه به خاطر لفظ کلمه کردنش اینجوری سبکتره بالغن الکعبت بالغ الکعبتی این سبکتری معمور الداری اینجا اسم مفعول مضاف هست به الدار باز هم وصف هست معمور و حسن الوجه حسن که اسم مشابه هست صفت مشابه هست مضاف هست به الوجه و تو سما این نوع مضافره لفظی میگوین لانه ها لمجرد تخفیف چرا بهش میگن لفظی چون فقط و فقط مضاف شده بخاطر تخفیف وگرنه برای تعریف نکه معرفه کردن یا برای تخصیص نیست از اینجاست که حدیان بالغ الكعبة، بالغ صفته هذه هست، هذه نكره هست، بالغ الكعبة مضاف بالكعبة با هست، ولي دروس هست، بالغ صفته هذه هست. ترى دروس هست، شون أزنوه لفظي است، إن مضاف معنوي نيست. بس ما دونه إضاف داريم إضافة, داري إضافة لفظي. و اضافهای معنایی در اضافه لفظی یا به معنی فی هست یا وزمانی هست که مضافن اله ظرف باشد برای مضاف من اند لیل یا به معنی من هست این زمانی است که مضاف مضاف ایله کل اون مضاف باشد حاتمو حدیدن مضافن ایله کل مضاف باشد و خاطر از حدیده دیگه و درست باشد که به وسیله مضافن اینه خبر بدهیم حاتم و حدیده حاتم و حدیده انگشتری تلا یا باب اما در مثال ید و زیدن میگه درست نیست که خبر بدهیم که دست زید هست ید زیدن نمیتونیم بگیم دست زید هست اما در خاتم و حدیدن میگیم خاتم انگشتری آهن هست پس در خاتم و حدیدن اونجایی که میگه مضاف به معنی من باشد درست هست که مضاف اله خبر مضاف بشه سبو به معنی لام هست که در بقیه مغارد قسم دوم که خب مضاف لفظی بود معنوی نبود چرا این فرق آورده به خاطر که یک سری فرقه با هم دارن در درس بعدی میگه ولا تو جامع الاضافه تنوینا ولا نونا تاليه للاعراب مطلقا جن نمیشه مضاف با تنوین و نونی که بعد از علامت اعراب بیاد مطلقا نمیتونیم بگیم غلامون زیدن باید بگیم غلامو زیدن باید بگیم غلامو زیدن خودش مثالی آورده است جاءنی غلامو زیدن و نونی که بعد از علامت رب میاد مانند در نون مصنع و جمع و جاء زیدانی در زیدانی نون بعد از الف اومده علامت رفت چه است؟ علیف هست نون بعد از علامت رف میاد، این نون هم موقعی که میگه کلمه مضاف بشه هست میشه. مثل یدا لهب، تبت یدا یادا یدا چرا هست هست چون مضاف هست. پس نونی که بعد از علامت اعراب میاد، اون نون در حالت مضاف هست میشه. ولی نونی که ایراب بعد از اون میاد حسف نمیشه. مثل نون مفرد و نون جمع مزرکر سار. جمع مکسر. کلمه حین یا کلمه اثمان. اینجا جا اثمان نو. اول نون وده بعدن علامت ایراب اومده که هست. میگه این نون در حالت مزاف حسف نمیشه. ولی نون مسنده حسف میشه در حالت مزاف. چرا؟ کنون بعد از علامت اعرابی بوده در مستنه میشه علامت اعراب علف هست و یا هست پس حکمی که در مورد مضاف میخواد توضیح بده میخواد میگوید که هیچ زمان مضاف بودن با تنوین و نونی که بعد از علامت بیاد جم نمیشه یعنی یعنی يعني مضاف تنوین نمیگیره و مضاف نونی که بعد از علامت میاد حس میشه یعنی در مصنع و مذکر سالم اینا که مذکر بشه نون حس میشه و لا و و الفلام هم با مضاف جمع میشه. یعنی پیش نمیاد که کلمه هم مضاف باشه هم الفلام داشته باشه الا مگر فی نحوی مگر در چند جا زمانی که مضاف وصف باشد مگر زمانی که مضاف وصف باشد مانند از زاربا زیده از زاربا مضاف هست به زید و نمیبینیم که الفلام داره یا به عبارتی دیگر مضاف لفظی است پس مضاف وصف باشی و مُثَنَّى باشه از زار باز باشه وصف باشه و مُثَنَّى باشه مانند ازار باز مُضاف مصا... مزا... وصف باشه و جمع مذکر سالم باشه مانند ازاری بوزیده مُضاف مزافون الف لام داشته باشه مزاف وصف باشه و مُضاف الیه الف داشته باشه ازاری بو الرجل مضاف اله مضاف باشه به کلمهی که اون کلمه الفلام دارد مانند از زاربو رأسی از زاربو مضاف می‌بینیم که الفلام داره رأسی مضاف اله هست ولی مضاف اله بشه هست؟ به الرجل هست که الفلام داره پس چارمین حالت زمانیست که اون وصف ما مضاف به کلمهی باشد که اون مضاف اون اله دوباره خودش مضاف شده باشه به کلمهی که علم لام داشته باشه مانند عبارب و رأس الجانی عبارب و باوجود که که می‌بینیم مبينیم علم داره چرا چون وصفه دو مضاف شده به کلمهی که اون کلمه مضاف شده به کلمهی که علم داره و حالت پنجم زمانی هست که اون وصف مضاف به کلمه‌ای باشد که اون کلمه مضاف به زمیر باشد و زمیر هم بر بگرده به کلمه‌ای که علفلم داشته باشد. مانند در رجلو آباری بو غلامی. آباریمو می‌بینیم که مضاف ولی الفلام گرفته. وصفه. بعدش مضاف هست به غلام و غلام مضاف هست به که زمیره و زمیر هم بر می‌گرده به الرجل که علفلم داشته. پس احکامات مضاف یه بار دیگه مختصر کنن مضاف تنوین نمیگیره نونی که بعد از علامت اعراب میاد نمیگیره یعنی نون مسنا که بعد از الف یا یا میاد و نون جمع مذکر که بعد از واف و یا میاد مسلمونه مسلمانی مسلمانی مسلمونه مسلمینه اگر اینا مضاف بشن دیگه نونشون حس میشه حکم دیگه مضاف این است که ولا ال میگه با ال هم جم نمیشه یعنی کلمه یک که ال هم نمیگیره. مگر در زمانی که مگر زمانی که مضاف صفت باشه و مضافون اله معمول اون صفت باشه و این در پنج مورد پیش میاد که این پنج مورد رو قلله رو توضیح دادیم موفق و پیروز باشید